بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله التجبین الطاهرین المعصومین لا سیما الله في الارض اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام و, السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون و على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكازم السلام عل علي بن موسى الرزا السلام على محمد بن علی الجباد السلام على علی بن محمد الحادي السلام على الحسن بن علی الزکی الاسکری السلام على الحجت بن الحسن القائم المحدي. السلام عليک يا أبا عبد عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت بغي الليل والنهار ولا جعلهلله الله الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام صبرا علی غذائك یا رب لا <سلام> اله لسواك یا قیاس المستقیسین مالی رب سواك ولا معبود غیرك صبرا علی حكمك یا قیاس من لا قیاس له این عبارت فرازی از دعا و مناجات صبح روز آشورای امام حسین علیه السلام است طبق نقل منابع روایی که در دست ماست من جمله بهار جلد 44 صفحه 297 عرض کردم امام حسین علیه السلام در روز آشورا یه مطالبی رو با خدای خود در میان گذاشتن در قالب دعا و مناجات یه فرمایشاتی رو با خانواده و اصحابشون داشتن یه فرمایشاتی رو هم در قالب خطبه با سپاه دشمن و مخالفینشون هر کدام اینها درسهای آموزنده فراوانی برای حتی امروز من و شما به عنوان پیروان و معتقدین به ابی عبدالله علیه السلام دارد که قطعا هم یکی از بهترین برخورد ما با آشورا و کربلا در ساموزی از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام است خب ابتدای این دعا و مناجات امام حسین علیه السلام به خدا عرض می‌کنند صبرا علی قزایک خدایا بر غذای تو صبر میکنم یا به تعبیری درخواست از تو می خواهم صبوری بر غذای تو را یا رب عبارت صبر، عبارت غذا، عبارت رب ادامش لا اله از سواک کلمه اله ادامش مالی رب, مالی رب سواک و لا معبود اینا تمام واجه ها با هم دیگه نکات عجیبی داره دیاریم. نخستین نخستین ای که امام در این دعا به کار بردن واژه صبر صبرن که شب اول بحثش گذشت دومین واژه علا قزاخ خدایا صبر استقامت ایستادگی بر غذای تو را من می طلبم یا آملم که هر دو توش نهفته شده غذا رو معنی کردیم دیشب با هم هنوز توضیحاتی نیاز داره ادامشو ورض بکنم تا بعد معلوم کنیم صبر بر غذا یعنی چی که اونگاه اگر وقت اجازه داد چرا غذا را به ربوبیت خدا نسبت داده است؟ صبرن علا غذاع که یا رب چرا امام در مناجاتشون اینگونه بیان نکردن؟ صبرا علا قضاء که یا الله این هم میشد گفت آیا این اتفاقی است یا نکتههایی در رابطه با این واژه ها با یکدیگر است اما کلمه غذا که با قدر با هم در فرهنگ اسلامی مطرح می شود با کمال تعصف یک معنای غلط مشهوری از او در ازهان عامه مردم رفته که بسیار هم مخرب و مخدر است اون غلط مشهوری که از کلمه قضا و قدر در ازهان عموم بارد شده یعنی خداوند یک گونه ای در این عالم برای ما معین کرده و ما غیر از اونی که خدا معین کرده نمیتوانیم عمل کنیم و اگر در ش... هر شرایطی واقع شدیم این مقدر ما بوده است و قضا و قدر الهی این گونه حکم می کند. پس ما باید در مقابل قضا و قدر الهی هیچ گونه اقدامی فعالیتی نداشته باشیم اگر کربلا ایجاد می شود قضا و قدر الهی بوده است عمر سعد چنان کند ابن زیاد چنین و یزید اونگونه. خب اگر به این معنی بگیریم از او بوی جبر برمیاد با اختیار و اراده انسان که بناس خود سرنوشت خود را رقم زند و نتیجه حرکت و تعالی به سوی حضرت حق را معین کند اگر غذاب و قدر به این معنی باشه که امکانش نیست پس معنای غذاب و قدر چیست؟ فشرده بحث دیشب که از آیات و روایات هم برداشت کردیم که امشب تکمیلش کنیم قضا به معنی گذشتن و حکم کردن و سپری نمودن و, و بریدن یک امر و تمام کردن قدر به معنی اندازه و مقدار این دو با هم معناش چه می شود؟ خداوند قدر را یعنی اندازه را اندازه چی؟ در عالم خلقت، چه برای تکوین چه برای تشریع قوانینی قواعدی نظامی را معین کرده این میشه قدر و این قدر را که خدا معین کرده غزا نموده است غذا نموده است یعنی حکم قطعی داده اون قدر تغییر نمی کند اون اندازه دیگه عوض نمیشه در عالم تکبین مثالی که ارز کردم قدر خدا این است که من و شمای انسان اگر قرار زنده بمانیم بی آب، بی هوا و بی غذا ممکن نیست. این قدری است که غذا شده است. یعنی اندازه ای است، قانون است قاعده ای است که از نظر پروردگار عالم، قطعی شده و دیگر امکان تغییر و تبدیل ندارد لذا واژه دیگری که در قرآن کریم و در روایات معصومین این معنا را برای ما مشخص میکند کلمه سنته اگر در قرآن آمده سنت الله ولن تجدل سنت الله تبدیله یعنی همین یعنی خدای قوانینی داره خدای نظامی داره خدای قوائدی رو بر این عالم حاکم کرده شما اون قوائد و نمیتونید تغییر بدید تخالف با غذا و قدر الهی تقایور سنت و قانون حاکم بر عالم از طرف پروردگار در توان ما انسان ها نیست و محاله اما تطابق با این قوانین و هماهنگی و همراه شدن با این سنت و نظام تکلیف و وظیفه ماست پس غذا و قدر نظام حاکم بر این عالم از طرف پروردگار در تکوین خلقت میشه غذا و قدر تکوینی در تشریع شریعت و قوانینی که قرار ما با عنوان متدین از دین تبعیت کنیم میشه غذا و قدر تشریعی پروردگار دیشب عیناً از روایت امیرالمؤمنین و از آیات نمونهش رو دیدید اما برای اینکه بحث یک کمی هنوز هم بهتر روشن بشه اجازه بدید یه واژه دیگری را که ما در فرهنگ دینی داریم و اون هم باز همین معنا رو نزدیکه به ذهن میکنه و برای ما مطلب قضا و قدر رو بیشتر توضیح میده مسئله مشیت پروردگار است شما معمولا در عرف و گفتگوهای روزمرهم زیاد به کار میبرید انشالله ان شاع الله ان اگر شاع خاص الله خدا اگر خدا بخواهد اگر خدا بخواهد این شائعه ان الله که مشییت پروردگار میگن با قضا و قدر و اراده و انتخاب من و شما در هماهنگی با قضا و قدر به چه معنی است من دو تا روایتی یکی از امام صادق علیه السلام یکی از امام رزا علیه السلام که این رو برای ما توزی دادن میخونم اولیش از امام صادق علیه السلام هر دو در کتاب محاسن برقی جلد یک صفحه که از کتب قوی روایی و قدیمی ما شیعایانه امام صادق فرمودند ان الله اذا اراد شیئا وقتی خداوند یه چیزی را اراده کند بخواهد قدرهو براش یه اندازه‌ی مقدر میکنه براش میزان و زوابتی قرار میده فإذا قدره اگر برای او اندازه و قدری مشخص کرد غذا و بعد حکم میکنه امضا میکنه ببخشید قطعیش میکنه بله همینه فإذا قضاه امضاه وقتی که این رو غذا کرد حالا امضا میکنه یعنی این دیگه تمام شد نه اینکه قلم برمی داره امضا میکنه یعنی میگه اندازش اینه اینم قطعی شده، دیگه این بله. این برای بشر، این برای جامعه این برای خلقت. مثال میزنم. خداوند اراده کرده است ما انسانها به کمال برسیم. این اراده البته تشقیعی خداست که توضیح میدم یعنی چی؟ خدا اراده کرده ما انسانها همه خوب بشیم. همه سلمان فارسی بشیم. همه ابوذر غفاری بشیم. همه مالک اشتر بشیم. خدا اینو میخواد. یه پدر مهربان اگر دو تا سه تا ده تا فرزند داشته باشه نمیخواد بچه هاش همه عالی همه سالم همه پیشرفته همه کامل باشن خواستن رو میخواد یه وقت میگه آقا دیگه از من بر نمیاد نتونستم کاری بکنم یه وقت میگه اون چه که قرار بود من انجام بدم انجام دادم ولی خودش نمیخواد چه کار کنم گرگدا کاهل بابا تقصیر صاحب خانه چیز حالا خدای عالم که از پدر مهربان خدای عالم که از پدر دلسوزتره توانمندتره اصلا توانمندتر غلطه قابل مقایسه نیست ولی با همه حرفها اگر خدا میخواهد همه ما انسنهای متعالی بشیم جبری نه شاعهی خدا چگونه است شما به این آیه دقت کنید لو شاء الله لجعلکم واحده ولكن ليبلو فیما فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات لو شاء الله اگر خدا میخواست لجعلكم امه واحده همتون یه جور قرار همه بشید سلمان فارسی همه بشید مثل مالک اشتر یعنی به اجبار همه خوب بشید مثل عالم فرشتہ ولكن خدا اینجوری اراده نکرده برای ما. ما رو انسان ها فریده. لیبلو و شما رو در بوته های امتحان آزمایش قرار میده. قوم میدان مسابقه است کیا سبقت میگیرن. کیا جلو میفتن. پس شاعه خدا برای ما شاعه است که اراده او را ما اگر خواستیم، عملی بکنیم با اون نتیجه ای که خدا برای ما معین کرده برسیم و اگر ما همراه با اراده ای که خدا برای ما کرده نشیم با اونی که خواستیم نمیرسیم اجازه بدید باز مثال بزنم تا این روایت معناش روشن بشه آقا یک معلم دلسوز قمخاری که واقعا واردم هست و جدی هم در کار تعلیم و تربیت موفقه میگه پنجات شاگرد تو کلاس همه میخواهم شاع خواستش. اراده میکنه ارادش که چی؟ هر پنجاتا بشن دانشمند انسان انسان دانشمند هم از نظر علمی دانشمند بشن هم از نظر اخلاقی انسان بشن میگه اون چه لازمه انسان شدن شماست من تو این کلاس اعمال میکنم آنچه لازمه دانشمند شدن شماست من در این کلاس اعمال میکنم اما در میان این شاگردان ده تا خوب گوش میدن انگونه که استاد معین کرده همراه میشن به نتیجه میرسن 30 دیگه 40 دیگه این کار رو نمیکنن پس شاعه خدا راجب ما چگونه است میگه غذای من که بر قدر من غذا کرده یعنی اندازگیری که برای شما کردم، اینو غذا کردم، قطعی کردم، حکم روش زدم این است که شماها اراده خودتون را به کار ببرید طبق غذای من با اراده خودتون عمل کنید ولی با اراده خودتون میتونید ارادتون را به کار ببرید با غذای من مخالفت کنید اینو میتونید چون این قدرت رو به شما دادم ولی اگر مخالفت کردید به اونی که قراره برسید نائل نمیشوید اگر امام حسین در این عبارت به خدا عرض میکنن مثل روز آشورا سبرن علا غذایک صبر گفتیم یعنی ایستادن مقابمت کردن خدا یا غذای تو برای من اینه که من شهید بشم چاش منم وای میستم منم استادگی میکنم خمم به ابرو نمیارم حالا در ادامه ارز خواهم کرد که غذای خدا برای امام حسین طبق اون بیان معروف ان الله الشاء ای راکه حالا این مشیت بعنوان یک قضا و قدر تشریعی خاص برای امام حسین در رابطه با کربلا چراست یعنی خدا دوست نداره امام حسین زنده بماند خدا نمیخواد امام حسین ادامه حیات بدهد که غذاب و قدرش اینه؟ نه، بحث خیلی ظریف حالا با هم انشالله بحث میکنیم اما روایت دوم اینو بیشتر برای ما توضیح میده یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امامان ما امام من جمله از اصحاب امام رزاس بسیار مرد بزرگی. در کتب رجالی ما شیعیان به این یونس ابن عبدالرحمن میگن که امام علیه السلام فرمود او دوبار مقام بهش رفتن داره عظمت به صلاح در پیشگاه معصومی یونس ابن عبدالرحمن میگه من خدمت امام رزا علیه السلام بودم قلتو به امام عرض کردم لا یکونه الا ما شاء الله و اراده و غذا لا یکونه نمیشه یه کاری یه فعلی یه عملی یه چیزی در این عالم اتفاق نمیفته الا ما شاء الله مگر اینکه خدا بخواد و اراده و خدا اراده کند و قضا و اون رو قطعی نموده باشد فقال علیه السلام امام علیه السلام فرمودن یه چیزی رو اضافه فرمودن فرمودن لا یکونو الا ما شاء الله و اراده و قدره و قضا قدره رو قبل از قضا اضافه کردن خیلی ظریف و دقیقه جوون های عزیز مخصوصا روی سخنم با شماست ببینید فرهنگ دینی مکتب اهل البیت چقدر زریفه یک شاگردی مثل یونس ابن عبدالرحمن که امام علیه السلام فرمودن تو دو بار مقام بهش رفتن داری کنایه از اینکه که مقام در پیشگاه ما خیلی با ارزشت خیلی عالیه و از شاگردان زبدهیه میاد یه همچون مطلب فکری دقیق را محضر امام ارز کنه امام فوری میگه نه این نکته رو باید بهش اضافه کنی حالا این اضافه کردم ببینید چه معنای میرسونه یعنی ما باید در معارف دینیمون به خصوص تو مباحث اعتقادی چقدر کار زریف بکنیم که امام به یونس ابن عبدالرحمن چی فرمود و یونس ابن عبدالرحمن گفت لا یکونو نمیشه الا مگر ماشاءالله. شعه خدا بخواد و اراده اراده کنه و قضا حکم قطعی بده اگه خدا نخواد خدا حکم قطعی نده که همچیزی صورت نمیپذیره امام چی فرمودن؟ لا یکونو الا ما الله و اراده و قدره و قضا این کلمه قدره بعد از اراده و قضا چی رو میفهمونه؟ میگه تا خدا نخواد نمیشه ما اینو قبول داریم خدا هم اونی که میخواد اراده نکند در این عالم تحقق بیابه باز تحقق نمیابه غذا را که یونس ابن عبدالرحمن گفت امام یه چیزی قبلش اضافه کرد قدره چرا؟ غذا یعنی حکم کنه قطعی بله اما قدره آقا یه اندازم خدا براش معین کرده بر مبنای اون اندازه غذا میکنه شاعه و ارادهشو دقت کنید چقدر معنا عوض میشه یعنی چی؟ قدره قبل از غذا و بعد از اراده و شاعه به چه است خود امام آلا ادامه میدن من اول توضیحش را بکنم ببینید امام میخواهد خدا میخواهد شاعه خدا منو شما نمازخان روزگیر متدین پاک سالم باشیم خدا میخواد یا نمیخواهد؟ پس خدا میخواد. در مقام تمثیل و تشبیه ارز کردم که لیسه که مثل رو توجه دارم یه پدر نمیخواد بچه هاش کنن بالا بیان یه استاد نمیخواد شاگرداش همه تعالی پیدا کنن خب بله خدا هم میخواد همه انسان ها پاک خوب باشن آیا حالا که شاعه فرقش با اراده چیه؟ خود امام علیه السلام اینجا توضیف برمودن قال قلت فما معنا شاعه یونسی بن عبدالرحمن میگه به امام رضا عرض کردم اینجا فرق شاعه با اراده چی میشه؟ حضرت فرمودن شاعه قال ابتدا الفعل قلت و فما معنا اراده قال از علیه و علی خیلی ظریف و قشنگه شاعه خدا میخواد اراده مستقر کردن و اونچه لازمه فائلیت فاعل برای این فعل فراهم کنه مثلا آقا بنده بگم به شاگردایی تو کلاسم من میخوام همتون دانشمند بشید میخوام خب میخای درس میدی کلاس گذاشتی کتاب میدی جزوات درسی رو میدی شرایط دانشمند شدن منو برای من فراهم میکنی این میشه اراده پس اونجا که فرمود شاهم میخواد؟ بله اراده اراده میکنه در عالم تکوین اراده تکوینی در عالم تشریع اراده تشریعی مثلا در عالم تشریع تو غذا و قدر تشریعی من احتیاج به امر و نهی برای تکامل دارم یا ندارم خب خدا امر نکنه نهی نکنه پیغمبر نفرسه امام قرار نده خب من از کجا بفهمم نحوه خواست خدا برای آدم شدن من چیه آقا مثل بعضیا برم بشینم مثلا فرض کنید که با یوگا خودم رو به خدا برسونم برم در مقابل مجسمه بودا با اون اداعتفار به خدا برسم برم با این حرکاتی که عرفانهای مجازی در آوردن با هزار جور بازی و نمیدونم شیطنت و یا اینکه که آقا جون نماز بکنم روزه بگیرم کدومه چه کار باید بکنم پس این اراده ثبوت مستقر کردن یعنی خاصش رو با پیاد کردن شرائط فائلیت فائل برای فعل فراهم کردن اما غذا امزامی کند قبلش فرمود قدره گفت یه نظامی یه اندازه یه معین کرده اون نظامی که معین کرده قدره چیه؟ مثلا خدا یه قانون گذاشته بنوان مثال تو عالم تکفین ارز کردم آقا اندازهگیری خدا در این عالم اینه خدا میخواد شما زنده باشید، سالم و رشد کنید، اما این اندازه رو گذشته رفتی زیر آب، کپسول اکسیجن با خودت نبردی، خفه میشی، این قدر است، این رو امضا کرده، شما نمیتونی اینو تغییر بدی، پس اگه میخوای طبق خواست خدا زنده بمانی، با شاءه و اراده خدا، همراه قضا و قدر خدا. ببینید چقدر ظریفه؟ وقتی یونس بن عبدالرحمن با اون مقام شاعه رو فهمیده بود اراده رو فهمیده بود غذا رو فهمیده بود یه قدره رو توجه نکرد امام فرمود نه اینو اضافه بکن لذا فرمودن شاعه ابتدا الفیل قلت و فما معنا اراده قال از ثبوت علی قلت و فما معنا قدره قال تقدیر و شی من طوله و عرضه گیریش طول عرض کنایه از این کسی این چجوری قراره تو این عالم تحقق بیابه قلت و فما معنا قضا قال اذا قضا و امزا و وقتی قضا شد دیگه از نظر خدا این تمام شده است پس قضا و قدر قوانین پروردگار در این عالم بر مبنای مشیت و اراده خداست شا... شاعه خدا همه ما انسان بشیم اراده خدا برای شاعه خدا جهت انسان شدن ما پیغمبر فرستادن، امام قرار دادن کتاب قرار دادن امر کردن نهی داشتن بعد قدره یکی از این قدره چیه در این عالم اختیار من شما اختیار من و شما جزء قدره است دیگه یعنی تقدیر خدا اینه اندازگیری خدا اینه همه ای اینا رو در کلاس درس تعلیم انسانیت الهی قرار دادم ولی اختیاری که گوش کنی یا نکنی هم بد دادم، این میشه تقدیر غذاش چیه؟ این دیگه بروبیام نداره عوض نمیشه اختیارت قطعیه اون شاعب و ارادم سر جای خودشه اینم غذا شده لذا اینکه بعضی وقتا افراد میگن آقا اگر مقدر است پس ما چه کاره ایم؟ غلطه اگر مقدر است یعنی چی؟ یعنی خدا این اندازه را بر عالم حاکم کرده که تو میتوانی طبقه غذای خدا در این عالم عمل کنی و میتوانی نکنی. این مقدره. حالا میتونی خبر دنبالش انجام بده. چرا میگی نمیتونم؟ یه سوالی دیشب برخی از عزیزان پرسیدن. البته دوتا سؤال. من حس کردم لازم توضیح بدم. گرچه ممکنه یک کمی این کاری ها خسته کننده باشه. ولی چاره نیست یک. گفتن خب اگر قضا و قدر با اختیار ما منافاتی نداره خب من کی دلم میخواست تو این خانواده‌ای که هستم متولد بشم دلم میخواست توی خانواده چنین و چنانی متولد بشم اگر قضا و قدر به معنی دخالت اختیار من هم هست من دلم میخواست توی سرزمین آباد، سربتمند، پرپول، چنین و چنان نه اینکه مثلا یه جایی متولد بشم که امکانات مالی نداشته باشه، فقر باشه از این گونه مطالب جواب. دیشب روایتی که از امیر خوندم غذاب و قدر و اشارهی که کردم در بحث اختیار گفتم دایره جبر و اختیار فقط و فقط و فقد و فقط اعمال و رفتار ماسلا غیر اونا جبره بله جبره ولی حالا اون هم خلاف ادالت خدا نیست عرض میکنم کی گفته اینکه من پسر به دنیا بیام یا دختر به اختیار منه ما نبودیم و تقاضامون نبود لطف حق ناگفتنیهامون شنود ما ا نبودیم تا این که بگیم ما میخواییم چی باشیم چی نباشیم خلقت اختیاری نیست تو این خانواده متولد شدی یا تو اون خانواده اختیاری نیست تو این مملکت متولد شدی یا تو اون مملکت اختیاری نیست توی این زمان متولد شدی یا اون زمان اینا اختیاری نیست حالا با هر شرایط در هر زمان در هر مکان، در هر خانواده، با هر جنسیتی که به وجود آمدی عقل داری، اختیار داری، قدرت انتخاب داری و میتونی در مسیر قضا و قدر الهی حرکت کنی البته با رعایت این قاعده لا یکلف الله و نفسن الله ووسعه ها اگر کسی در یک خانواده و محیط و زمان و مکانی به دنیا اومده امکاناتش ست تاست 50 تا کار کرده بنده در یک خانواده و زمان و مکانی متولد شدم امکاناتم ده تاست پنج تا کار کردم ما دوتا مقاممون در پیشگاه خدا یکسانه، چون خدا عادله او شرایط زمانی و مکانیش این بود که ببخشید حواس ما میشه یه سلوات نوعید بفرمایید اسان اختیار یعنی این یعنی در شرایطی که قرار داری با امکاناتی که خداوند به شما داده به وسیله آن امکانات در آن شرایط چگونه عمل میکنی حالا یکی امام حسین است شرایطش کربلاست یکی امام حسن مجتبی است شرایطش معاویه است صبر بر غذای الهی امام حسن تحمل فوش در صلحه که کمتر از به یک معنا تحمل امام حسین در کربلا به یه معنا نیست فوش میدن تهمت میزنن یا مزل کافرین میگن آقا جرعت نداشتی به جنگی خانه نشین شدی مثل 25 سال خانه نشینی در اون شرایط زمانی و مکانی وظیفه ولی خدا اون گونه عمل کردنه حالا در شرایط زمانی و مکانی امام حسین در کربلا که انشالله با ادله ارز میکنم چرا اون هماهنگی با قضا و قدر الهی چیه؟ جز با کشت شدن امام حسین و پذیرش این شهادت و این گونه رسوا کردن بنی امیه حقیقت دین به مردم نمیرسه رسه خدا در این عالم تحقق نمیابه پس میگه من صبرن علاق از پس اینجا بگیم تو این خانواده تو اون خانواده منافاتی با اختیار نداره البته یه بحثی هم حکما دارن بحث قشنگیه میگن اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است یه قاعده فلسفی است اقل دلیل بر امکان شی وقوع شی است کمترین دلیلی که شما بر ممکن بودن یک امری میتونید ارائه بدید واقعیت خارجی اونه آقا واقعیت خارجی در طول تاریخ تو محیط های بد تو خانواده های بد تو افراد کم بزاعت، با مشکلات بسیار انسان های رشدیافته یا عالی پاک با تقوا کم داشتیم تو خانواده های خیلی خوب حتی خانواده امام و پیغمبر زن و بچهشون گاهی همسر پیغمبر بود چگونه در اومد فرزند امام بود چگونه در اومد؟ پسر نوح بود چگونه در اومد پس این دلیل نمیشه بگیم آقا شرایط خانوادگی من این بود شرایط محیطی من این بود نه اون قدرت انتخاب و اختیاری را که خداوند به من و شما داده در این بزنگاه های حساس زندگی بخواهیم استفاده کنیم می توانیم اوج بگیریم حالی همه بحثای ما اینه که به توانمندی خودمون که ذات اقدس الهی به ما انایت کرده و این راه هایی که در این راستا برای ما داشته اینو ندیده گرفتیم و لذا به اونجایی که قراره برسیم نرسیم شما تو اصحاب عبی عبدالله ببینید چه اکشاری از یک غلام سیاه اونچنانی تا یک مسیحی با یک برخورده با امام از اون طرفم افراد سابقه داره با کلی پیشانی های پینه بسته نتونستان با امام همراهی کنند. اونا با امام همراهی کردن این بحث همراهی با غذا و, غذا و قدر الهی در توان و اختیار من و شماست شبهه دومم خدا مگه نمیداند ما چه میشویم ما خلاف علم خدا که نمیتونیم عمل کنیم این مقدمات حرف درسته نتیجه گیریش غلطه خدا میداند بله خدا میدونه شمر مام حسین رو میکشه خدا میدونه عمر سعد این کارا رو خواهد کرد خدا میدونه یزید چنین میکنه ولی آیا علم خدا در رابطه با فعل ما سبب فعل ماست یا آگاهی بر فعل ما سبب فعل ما نیست آگاهی بر فعل ماست شما یک عالم یک فاعل در نظر بگیرید یک زمان همون فاعل عالمه لذا میشود علم این فاعل که عالم است یکی از اسباب عملش باشه یکی از اسبابش نه تنها اسباب اونم نه به صورت جبری الان مثال میزنم بنده فاعل آمدن تو حسینیه و صحبت کردنم من فاعل این کارم فرض کنید من میدانم انشالل اگر خدا عمرده و توفیق داشته باشم فرداشب میام اینجا با شما سخن میگم چون عالم خودمم هم و خودم هم یکی از عواملی که در مقدمات افعال اختیاری من دخالت میکنه من تصمیم بگیرم بیام اینجا اون آگاهی منه ولی شما عالم باشید بنده فائل شما میدونید بنده فرد شب میام اینجا علم شما در آمدن من به اینجا چه نقشی دارد؟ هیچی. سبب فعل من نیست آگاهی بر فعل منه لذا اگر به خیام نسبت میدن گفت من می خورم هر کچه من اهل بابد می خوردن من به نزد او سهل بابد می خوردن من حقز ازل می دانست. گر می نخورم علم خدا جهل بابد جوابشو خاج نسیر توسی این مرد بزرگ با یه بیت داده علم ازلی سبب اصیان کردن در نزد اغلا غایت جهل بود گفت در نزد اغلا علم ازلی رو سبب فعل بگیری یه برخورد جاهلانه است علم او سبب فعل نیست علم او آگاهی بر فعل من شماست یه مثالم میزنم از این قسمت رد شم ببینید فرض کنید بنده علم غیب داشته باشم چه ادعایی ندارم دارم میگم فرض کنید من علم غیب داشته باشم میخوام برای شما ثابت کنم من علم غیب دارم میگم آقا شما آقای ایکس زیر نظر بگیرید از فردا صبح تا هفته آینده این موقع این کارو این کارو این کارو خواهد کرد حالا همراش برو ببینین کارا رو میکنه یا نه شما میری برمیگردی هفته بعد به بنده میفرمایید آقا هر چی گفتی انجام دادا چون من میدونستم او انجام داد یا چون او قرار انجام بده من قدرت کشفش رو از قبل دارم من قدرت کشف از قبل داشتم علم کاشف هست اینجا علم سبب نیست لذا در قضا و قدر ربط به سرنوشت که دادید خدا میداند بله خدا میداند ولی حالا حتی بعضیا این سوالو اینجوری مثلا مت... آقا شما چی میدونید خدا برای فردای شما چی میدونه از بهانه نکن تو فردا کار خوب خودت انجام بده حالا بگه من فردا کار بد انجام میدم چون خدا میدونه من فردا قرار کار بد انجام بدم. خب تو کارو خوب انجام بده چون خدا میدونه شما فردا قرارو کارو خوب انجام بدی. میگه حالا اگه توبه کردم برگشتم میگم خدا میدونه شما تصمیم میگیری توبه میکنی. پس اینا ربطی به اون اصل بحث نداره. من خواستم شبهات جواب داده باشم. حالا برگردیم به اصل مطلب وقت کمه. صبرنا علی قزائک یا رب خدایا صبر میکنم بر غذای تو ای پروردگار من Allah شما در زیارت امین الله بارها خونده اید به این عبارت دقت کنید اللهم فجعل نفسی مطمئنتا لقدرک رازیتا به غذایک به همین بحث رفت میشه خدایا من اونجوری قرار بده این نفس انسانی من نسبت به قدر تو با توضیحاتی که دیشب و امشب دادم و این روایت مامرزا علیه السلام رو در توضیح برای یونسب نبدالرحمن براتون خوندم این اندازگیری که تو بر عالم حاکم کردی قضا و قدر تشریعی خدا طبق روایت دیشب امیر المؤمنین امر و نحی خدا قضا و قدر تشریعی خدا راجب افعال ماست خب خدا قدرش چیه؟ آقا جون از اول از آن صبح تا طلوع آفتاب قضا و قدر تشریعی خدا نماز صبح درکت بادخون قضا و قدر الهی تشریعیش در ماه مبارک رمضان روز گرفتن خدا یا من اونگونه قرار بده که در عالم نفسم مطمئن به این اندازه تو باشم و بدونم هیچ که بهتر از این اندازه گیری در این عالم نمیتونه بکنه هرچی تو مقدر کردی من اون رو نسبت به او تردید به خودم روا ندارم حالا قضای تو این حکمی که تمام کردی گفتی همین لاغیر یعنی برید یا تمام کردی من نسبت به این رازیتن مقام رضای نسبت به قضای تو را پیدا بکنم خب حالا این رو با عبارت امام حسین علیه السلام یک کمی نزدیک بشین به این صورت یک کمی دقت می طلبه انایت بکنید سبرن علا قضا اکیارب خدایا بر غذای تو صبر ای پروردگار خب غذای خدا چی بود که با هم حسین صبر صبر کنه یکیشو که در رابطه با واقعی کربلا بیشتر محسوسه من ارز کنم ببینید خداوند یه سنتی در این عالم داره که چون بشر مختاره و قرار با اراده خودش در این عالم در کلاس تربیت الهی تربیت شود همه خوب تربیت نمیشن، همه گوش نمیکنن، یه عده بد میشن یه عده خوب این طبیعی در طور تاریخ هم بوده همیشه هم هست خب حالا نحوه برخورد بدا با خوبا چگونه است؟ اینم تو قضا قدر خدا معلوم شده سه حالت ممکنه یک خوبا بگن که ما خوبیم، هیچ کاری به بدا نداریم ما به خوبی خودمون میپردازیم خوبا بگن تحت تاثیر بدا قرار میگیریم ما بد میشیم خوبا بگن من فعلا رابطه خوبا با بدار رو دارم میگم حالا از اون بر بدا هم داریم خوبا بگن یک ما خوبیم هیچ کاری به بدا نداریم خوبا بگن ما خوبیم ولی به مرور تحت تاثیر بدا بد میشن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو مام چاره ای نداشتیم مثل اینا شدیم خوبا در عالم حیات و زندگیشون نسبت به بدی بدها عکس العمل نشون بدن و در بازداشتن بدها از بدی دخالت کنند. حالا ببینید در قرآن کریم و روایات نسبت به این به عنوان یک سنت و یا قضا و قدر الهی چی گفته شده منتهای صلوات میطلبه سوره مبارکه ماعده آیه هفتاد و هشت هفتاد و من تقاضا دارم اینو دقت بفرمایید لعنالذین کفرو من بنی اسرائیل علا لسان داود و بن مریم ذالک به ما حالا به ما ادامهشو رو عمدن نگه داشتم بعد بگم تا اینجاش دقت کنید لعن الذين کفرو من بنی اسرائیل، اونایی که از بنی اسرائیل کفر ورزیدن اینا لعنت شدن لسان داوود از زبان حضرت داوود و عیسی ابن مریم عیسی ابن مریمم اینا رو لعنت کرده زالک بما چرا چرا حضرت داوود این عده از بنی اسرائیل رو لعند کرده چرا عیسی ابن مریم این عده از بنی اسرائیل رو لعن کردن به بما اسو برای اینکه اسیان ورزیدن گناه کردند، یعنی بد شدند. اما ادامش و کان و یعتدون و تعدی کردند، ادامش آیه بعدی. کانوا لا یتناحون ان ملکرن فعلوه، لبعس ما کانو یفعلون. و اینها نحیه از منکر نکردند و اونایی که بد بودن اون بدا را از بدیشون باز نداشتن، اینا هم ملعون واقع شدن. پس یعنی اگر خودشون گناه نکردند، خودشون اسیان نکردند، به تعبیر بنده در این ستا دسته بندی جزء بدا نبودند ولی چون بدا را می دیدن, سکوت می کردن, برای خوبی، هدایت، ارشاد، باز داشتن و اونها گامی بر اینها اینا هم شامل همون دهی شدن که اونلن شامل حال اینها شد آیه بعدیش هشتاد ترا کسیرن من هم یتولون لزین کفرو بسیاری از این مردم را دیدید که به دوستی یا سرپرستی گرفتند. کسانی را که بد بودند و کف ورزیدند لبعس ما قدمت لهم انفسهم ان سخت الله علیهم فل العذاب هم خالدون چه کار بدی کردند چه توشه بدی برای خودشان فرستادند که چی با بدا به جای اینکه که اونها رو از بدی باز بدارن نحی از منکر کنن امر معروف کنن ارشادشون کنند، با اونها کنار اومدن و با اونها دوستی ورزیدن اونها رو به سرپرستی خودشون قبول کردند، چه بدبخ شدن و ملعون شدن از امام باغر علیه السلام تفسیر برهان زیل این آیه هشتادوم این روایت نقل شده یتولون الملوک الجبارین و یوزن یزینون لهم احواهم ليصيبو من دنياهم امام باقر فرمودند یعنی دنبال حکمرانان ظالم پیشوایان جبار ستمکر رفتن بدیهای اونها را به اونها گوش زد نکردن بلکه اعمال سو را براشون تضییر کردن تا یه بهره دنیاوی از دنیای اونها گیر اینا بیاد اینا ملعونن این در سنت الهیه شما اینو بذارید کنار این عبارت مام حسین علیه السلام خوب دقت کنید الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهان ليرقب المؤمن فی لقاء ربه محقا اني لا ارى الموت الا سعاده ولالحياه مع الظالمين الا برما نميبينيد به حق عمل نمیشه بینید از باطل نهی نمیشه یعنی بدا که بدن به حق عمل نمیکنن امثال یزید و اطرافیاشون الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى آقا یه ادم به جای این که پاشن داد بزنن بابا این غلط دین پیغمبر این نبود راه پیغمبر این نبود شریعت اسلام این نبود یزید همه چیز رو بازی چه قرار داده یه استخری پر از شراب در کاخ سبز خودش در شام درست کرده با محارمش در استخر پر از شراب وارد میشه مینوشه مصد میشه زنا میکنه لاشه متعفن در حال قرخ شدنش از این استخر میکشن بیرون اون وقت فیدای جامعه ا عمودی امام باقر علیه السلام یتولون الملوک الجبارین و یزینون لهم اهواهم صف کشیدان السلام علیک یا خلیفت رسول الله وقت اینجا سنت خدا چیه اون که امام حسین بیان کرد الا ترون ان الحق لا یملبه و ان الباطل لا یتناها لَيَرْغَبُ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحَقَّقًا إِنِّي لَا الموت الله إِلَّا اینجا دیگه قضای الهی بر این قدر قضا شده که باید مرد دیگه نمیشه با این شرایط انسان به حفظ جان خودش بپردازه پس صبرن على قضاءك یا یارب یعنی خدایا طبق نظام تو وقتی بدای جامع زیاد شدن خوبا نباد آروم بگیرن خوب حرکت کنن ولو این حرکت به اندازه شهادت اون گونهی که امام حسین شهید میشه اجازه بدید یه تیکم از نهج البلاغه تیامنن و تبرکن امشب بگم وقت کمه بقیه رو بذارم فردا شب انشاءالله اینم از اون جاهای نهج البلاغه است که خیلی با آدم درس میاموزه خطبه شماره 166 آخرین فرازش امام علیه السلام طبق نقلی که شارهین نهجل بلاقه کردن میگن این از فرمایشات حضرت در مدینه دوران خانه چون نهجل بلاقه خیلی از خطبه در دوران حکومتیشون در کوفه است. و در دل امیر المؤمنین در دوران حکومت ظاهری کوفه کمتر از دوران خانه نیست. چون اونجا هم دل حضرت رو برخون کردن. این طبق نقل شارهین و خود مرحوم سید رزی، زمانی است که حضرت تو مدینه خانه‌نشینت جمعی در محضر حضرتان یک گله‌هایی هم از وضع بدی جامعه کردند حضرت فرمودند ای یوحناس لولم تتخازلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يتم من ليس مثلكم اگر شماها از یاری کردن حق سستی نمی و اگر شماها باطل روز ضعیف میشمردید و کوتاهی در ضعیف شمردن باطل نداشتید لمیت مفیکم نمی کردن در میان شما کسانی که هیچ نوع سلاحیه تا هم پایه شما هم نیستم و لم من قوي عليكم اونایی که بر شما قدرت پیدا کردن، سلطه پیدا کردن و اینجوری بر گرده شما سوار شدن، اینا قدرت پیدا نمیکردند. لاکن نکم شما رو به جان مولا امیرالمؤمنین این تیکه رو دقتی بیشتری بکنید. لاکن نکم تهتم متاه بنی اسرائیل. تیه بنی اسرائیل تو قرآن همتون تون دیگه من تکرار نکنم. بنی اسرائیل وقتی که طبق این آیه شریفه لا ان شکرتم لا ازیدن و ان کفرتم منا عذابی لشدید کفران نعمت حضرت موسی و اون قزایا رو کردن تو وادی تیح یعنی سرگردانی چهل سال سرگردان بودن تا بعد است... آیه قرآن میگاد سریح قرآن اگه فرصت بود آیاتشو براتون میخوندم چهل سال سرگردان بودن گرفتار بودن چه بلا بر سرشون اومد استغفار کردند توبه کردن خدا نجاتشون داد امیر المؤمنین در خطبه 166 نحج البلاغه مردم اگر شما حق را یاری میکردید باطل و ضعیف میشمردید لمیت مأفیکم من لیسم اسلكم ولم من غوی علیکم نمی این گونه که بر شما قدرت پیدا کنن اونهایی که بنا نبود قدرت پیدا کنن بر شما مسلط بشن اونایی که حتی هم پایه شما نیستن چا برستی که از شما جلوتر باشن لاکن نکم تهتم متاه بنی اسرائیل و امری وای از این عبارت به بعد اما نه شما هم مثل بنی اسرائیل دوچار چی شدید؟ چون قدر نعمت را ندانستید نتیجه همون شد که با اون بلا مبتلا شدید و امری به جان من علی سوگن لا یذعفن لکم تیه و من بعدی ازعافم به ما خلفتم الحقه ورا ظهورکم به جان من قسم وادی تیه شما مسلمانا بعد از اینکه حق را پشت سر گذاشتید به مراتب از وادی تیه بنی اسرائیل از عاف مزعفه پس این سنت الهی حق رو کنار بذارید چی میشه گرفتار میشی حالا صبرن علا قزا سنت خدا چیه اگر به حق یاری ندید الا ترون ان الحق لا یعمل به این فرمایش ماموسین اینجا حتما شاهد برای اثبات ارائزم لازم دارم الا ترون ان الحق لا یعمل به آقا به حق عمل نمی از باطل نهی نمی کنن ارزش ها جا به جل شده در چنین شرایطی جداً به من فرمود اخرج الى العراق ان الله شاء ايراك غتي غتیلا خدا با توضیحاتي که دادم مقدمه شاء اراده قدر و قضا شاء یادتون باشه فرمایش امام رضا شاء اراده قضا وقتی یونس بن عبدالرحمن قدررش رو نگم حضرت فرمود نه قبل از قضا باد قدرشم بگی لذا اون تقدیر اختیار شما در اونجا هم معلوم بشه پس جمبندی بحثم تا اینجا چی شد؟ ادامه شو الله فرداشا برای شما پی بگیرم صبرن علا غذا اکیارب ای این پافشاری و استقامت و ایستادن بر غذای را غذا ی رب. با قدر قوائد نظام و قوانین حاکم بر هستی از طرف پروردگار عالم. که در عالم تکوین قضا و قدر تکوینی، در عالم تشریع قضا و قدر تشریعی و از همین قضا و قدر اختیار من و شما و اراده من و شما برای تطابق با قضا و قدر یا تخالف با غذا و قدر اما نتیجه تخالف و توافق و تتابق دیگه در اختیار من شما نیست اون هم بر مبنای غذا و قدر خدا و سنت او قطعیه توافق با غذا و قدر کمال است؟ و غرب است حرکت بسو خداست تخالف با غذا و قدر سقوط است و شاید این آیه سوره مباركه بتونیم به این مطلب رفت بدیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خس الا الذین آمَنُوا وعملوا الصالحات آمنو به همه اونچه که خدا برای ما مقرر کرده و عمل الصالحات اراده خود را به کار بردن که عمل صالح رو با این مقدماتی که ارز کردم با, با یه بیان اصطلاحی ارز کنم تطابق با قضا و قدر الهی اللد اینین آمنو و عمل صالات و تواس ص به و تواس به صبر نسبت به دیگران هم بیتووت نباشند اگر میخوان خسران نکرده باشند خوبان نسبت به بدی بدان مؤمنن عمل صالح <تصحيح> دارند دیگران را هم توصیه به این حق بکنن و صبر در این مسیر رو داشته باشند نمونه بارزش بارزش بارزش امام حسین و کربلاز میگه صبرن خدای غذااییدا. تو اینه طبق آیاتی که از سوره مائده براتون خوندم که اگر یه عده از خوبان بدی بدانو ببینن انجام وظیفه نکنن اینا ملعونن اینا معذبن اینا باد وظیفهشون انجام من ایستادگی میکنم برای اینکه بتونم این وظیفه ما انجام داده باشم حالا چه جوری ایستادگی تو برخی منابع همین امروز مجددن مراجعه کردم خدا میدونه برام سخته بکن خدا میدونه سخته ولی چه کنم این ایامه و تو این حسینی هست میگم میگه وقتی بنی اسد اومدن عبدان متحر رو دفت کنن یکی از اسراری که امام سجاد علیه السلام با تیال عرض و قدرت معنوی الهی باید بیاد چون این اصلا عبدان رو بدن این رو امروز عینن تو معطن دیدم وقتی بدن امام حسین رو به اینها نشونداد دیدن یک قسمت بدن دست نداره یه قسمت بدن پا نداره حتی سوالی کردن فرمودن که این دست رو که در هنوز از دنیا نرفته بود با شمشیری که زدن جدا کردند. اما پا رو از بس اصم دووندن پا از بدن جدا شده صبرن علا غذای که یارم. وقت امام حسین خم به ابرو آورده بر همین مبنا میگن وقت زینب سلام الله ها اومد کنار گودال قتلگاه خطاب پیغمبر گفت جدا یا رسول الله حسین حسین مرملون بالدما مقد تعالعزا زینب بی خودی نگفته مقد تعالعزا بدن ابی عبدالله رو تیکه تیکه کرده بودن لذا وقتی اومدن حالا میخوان بدن رو دف کنن چرا بوری آوردن؟ برای اینکه هر جای بدن و برداری قسمت دیگه بدن میپاشید اربن اربای علی اکبر در مقابل بدن ابی عبدالله شیجی نبود لذا حسی رو آوردن این بدن و به یک شکلی داخل این بوریا جمع کردن امام سجاد وارد قبر شد خب باید صورت رو روی خاک بگذارن <تصفح> ابی عبدالله که سر در بدن نداره بدنم که مقتعال اعزاز آقا طول دادن یه وقت بنی اسد دیدن امام سجاد از قبر بیرون نمیاد خواستن کمک کنن دیدن آقا لبا رو گذاشته رو گلویه برویه <تصفح> نمیدونم من با زوغ و زبان حال میخوام بگم نسبت نمیدم نمیدونم آیا امام سجاد علیه السلام از قبر نمیتونست بیاد بیرون اونجا امیر و فاطمه زهرا به کمکش اومدن یا نه چون مرتبین ایام نقل میکنند دوره بر سر وریده عبی عبدالله صدای عزیز مادر به گوش میرسیده <تصفيق> هر قیمتی بود امام سجاد رگهای بریده بابا رو روی خاک گذاشت به جای صورت علی اصغر رو روی سینه بابا گذاشت علی اکبر رو پایین پای بابا گذاشت یه گودال بزرگی ام پایین پا کند همه شهدا رو اونجا قرار داد بعد که خاک رو قبر ریختنش ها هاذا قبر حسین ابن علی اللذی قتلوه اشهنا و اگر از بچگی و در گوش ما می‌خوندند اگر کشتن چرا آبد ندادن صلی الله علیک یا مولای یا رب شب جمعه است شما هرچی امشب دلتون میخواد از خدا با حسین خدا بقاید یعنی من از ما حسین امشب میخواهم آقا یه گوشی چشمی نگاه به دل ما بکنید این دل ما برای ما دل کنید آقا که به جز به شما به کسی دیگه دل ندیم دل برای ما شما باشید یا بلال رسول الله، یا حجت الله و علی و مولانا، این نه و توسط الله بکنم یا الازل الجلل اكرم من مولانا صاحب الزمان يا الله سمت قلبي على دينك وقف يا غازي ويا انك مجيب الدعوات كل شيء برحمتك يا روح مین یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدوم ورع سمال الرجام واسلام لكم یا يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام يا لمن لا يؤلم صل محمد فالفال بما انت حلو ولا تفال بما وانا من نجاتنا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحبنا بسم الله الرحمن الرحيم ام ما و یا مجيب دوت المزترین بکا اینا مزترون فعجبون و یا غیاس المزتر المستقیسین بکا اینا مستقیسون فعجبون الهی و حمید و بهد محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا غدير بحق الحسن بحق الخسائن وتسعة المعصومين من زريعة الخسائن اللهم عجل الجل والنجيل فرع اللهم عجل ولی کل فره خدا به ما رحم کن خدا به بزرگید به عنایت خاص و آمد به رحمت رحمانی و رحیمید برای پایان بخشیدن همه بدبختی ها امر فرج امام زمان امضا فرما ما رو در زمره یارانش در دوران غیبت و ظهور قرار بده ما رو در فتن آخر و زمان ثابت قدم بدار شیعان دنیا و این مملکت دشمن شاد مفرما ریشه داعشی آبال سودال خلیفه و هامیالشان بکن جوانان ما نبوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما اموات و ذبیح حقوقمون بل اخس مرحوم اجای ما زاده و اجخونه شون از ساعه مهمان امیرالمؤمنین قرار بده دستایی که مکنون به سوی تو دراز شده نا امید بر مگردان حوائج مشروعه این جام را با بفرما یا رب الحسین بهند الحسین اش سدر الحسين مزهور الهجة. يا رب الحجة اشف صدر مزهور و بازش السلام عليكم يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الله لو النهار ولا جعل الله اخر الاهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته اللهم, اللهم صل, صل علیه علي بن و آل و الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الآرغم من تحت فراستيق شهيد الشهيد كسيهاتن تام ماتن زاكية تن مطبّاتن اتن مطبّاتيراتن مطرادفه كفّال ماسلّي اقدم من أولياءك السلام علیکم مولا یا حسن, حسن یا علی ابن موسی ایها رضا و رحمت الله و او علیک سلام علیکم یا علیک حجت الله, الله. سلام علیکم یا علیک بقیت الله سلام علیکم یا صاحب الامر از زمان حدجل الله تعالى فرجك و کفاسه الله مخرجك السلام علیک و لا آباک تاهرین و رحمت الله و برکات او انفات